Ha <laughs> گفتم کلیت بنداز بزن بیشتر بزن عمدن زنگ زدی همه ویدئوشن آره کجا؟ باستا تو می خانواده رو بهتر می شسی یا من اصلا مخفی کاری هم ولی بابام بگه چیزی مخفی بمونه همه میگن چشم همه ای برای من وجود نداره من یه بابا تو میشنسم قرارمون بابا بوده قرارم هم گفتن به کریم بوستان آراز بختشه توی این خونه و خونواده چند سال همه نگاه ها پر از شک و تردیده به بابام باید همه بدونن باید این نگاه ها برداشته بشه کمک کنی اتفاق بیفته. چی خواهی بگی؟ بابا خواستم سلام دستتون ما تو حالا داشم نبوده چرا برگش خوردین بدون اجازه شما جایی نمیرم گفتم چرا برگشت خوردین فکر کنم آقا جو نیستیم ها با اجازه vai ببینم vai اگه من دماله جور بودم باحت بودم که جله بابام میگی اونجا تو کلبه رسولم گفتیم به درد هم نمیخوریم من باید باعثم اینجا بلرزم به صوفم چی شده یا بیایی تو خونه آنا راز. اینجا یا تو خونه من این بار رو سباک میکنم از دل بابام تو بی خود میکنی آو یواش چه خبرته اینجوری سمت یه خانوم حمله نمیبرن چه چده تو تو خونه Móf, te jött of the faculty. قرآن بیارید میخوایید حرف بزنم قرآن بیارید بذارید وسط میخوام حرف بزنم ولی میخوام حرفم هم همینجا بمونه بوق و نشه اطلاعی روزنامه و حرف دهن مردم نشه حرف داری؟ راز داری؟ بسم الله اگه آقا کریم بستان بگه راز بشه راز میشه و رازم میمونه راز میشه اما اگه چپ, چپ به لیلا نگاه کنی و لیلا چپ چپ به تو نگاه کنه نمیخوام راز بشن فهم نه چیزی رو وصول کن وصول؟ راز ما راز شماست دیویس میلیون پول گم شده اون سال نگفتم میخوام از پول حرف بزن چرا چرا چرا میخوای حرف بزنی اگرم نزدی نزدی فتا بسنی اما نگیرین که با هم جفت نیست جفتین خیلی هم زیاد پای همه وصف نکش آراز فقط یک بگو مدرک داری که حرف من حرف بوده نه داشته باشم دادگاه کهی چی همسای بقلی هم نمیشنفه بس مدرک میخوای شکار بخوام پسرم باورم کن. من باور دارم آقا باورم داری که امشب تو حجره یک چابش بودی پشت سرش تو میدون قدم زدی باورم داری راست میگه ستار تا حالا توکر داره شد به دروغ گفته زنگ زده به من میگه تبریک میگم اینا آخه تبریک چی؟ میگه سل شده بینتون دیگه سلحه؟ قدم زدیم؟ میدونی سونو گذاشتی منجله همه خراب شم؟ گدوشتم تو جمع تنبیه شی. ما مال از دست دادیم اما با منت و گردن کج نمیلیم پسش بگیریم استوار میریم جلو میگیریم استوارم برمید کیف فهمیدی حق با من کریم بوستانه یادتش را آقامو پیده کردم چاباش پارش کرده سو دوندتش کسافت ای حق در تو بفهم کسافته کسافته کسافت کسافته که رفتی ازش با گرفتی؟ عقامو گرفتم خودو من حق تو یا من این چکرونه میشد کسی نمیفهمی؟ پول میشد خونه؟ پول میشد ماشین؟ پول میشد؟ دیگه میشد واسه مادرم من بلدم جون زنم و نجات بدم با ماشین جاری؟ باطرون مرده پالونش هم گوشه عیات افتاده حکایته از عصب افتادنه نه از عصب افتادن حالا تو از کدومش افتادی؟ نمیدونم که چه که چه باش تو جیبته چشم اگه چکش ها باش پس اندازتون واسه دونگه هجره بوده سه دونگه من مال شما اون سه دونگه الان دیگه 300 ست دونگه چند درصد اصاب کردی ها هم بابا بسه الان همه نوچی اونجور که دلت میخواد شد الان تنها چیزی که مهم نیست دل منه برای رو بود حرف, حرف بود که زدی حرف حق قول و, و نوزولشو میخواد آرا آرام داشته دارم که چکش رو خورده آوه رو قیم میکنه آراد فکر دروغ میگم آراد بله بروه ساوت عرفا همون سمون نشده همون شده وقتی داره توحمت نزول خوری به صفره بوستان نیزنه توحمت کده توحمت پسرت میگه سی ست جنگ ساکو میگم. کجا اولا پسرتون نه پسرتون دوباره بزرگتر کچیکتری گفتن سه با من حرف و دعوای من با این حساب و کتاب نه به تو مربوطه نه به لیلا این خونه که به صحب رسید آسد کماله و ازاز میاد اینجا میشینه شما دوتا میشینین خطبر رو میخونه می چکل جهاز رو از داداشت میگیری میذاری جیبت میری زیر یه سبزنش زندگی میکنی خلاص چهار رو من حجره تو مال خودته حجره توه من اگه ورزه داشته باشم میرم حقمو از این چاوش یا میگیرم یا نمیگیرم بیشه بالا یا شی پایین خدا رو شاهد میگیرم اگه این الفت خانوم نبود اگه این بچه ستار ن범 نبود من این مال و دونه کفتر میکردم این پاچیدم تو صحن امام رضا آنجما نه دیگه آنجما نذار باز دوباره افتادی خوشه ما بری با په خیر بمون اینجا تا صبح نه شب په خیر ما از افتادیم تو بلای لجبازی آب جی آزفه حالا به چابش گفته میاد سراغم نمیخوام اینجا پیدم کنم هرم نمیخواد صبح لیلا زنم بشه بعد بگن باز خاطر دختر کریم وستان دعا شد فروختی که فروختنی نیست حق این بود که گفتم پای پرداختشم باید سودام هیچ وقت این نمیگه ده میگه نه نمیگه چون من زنت نمیشم شکوندن بلدی درست کردنش هم بلدی پسن بدری آقا کریموستان قول داده این گوش به اون گوش نرسن که که به قول آقا کریموستان شک کنه. من یه حلالت یه گذشتم بدری بشنوم دیگه سایم هم کسی نبینه آقا کریموستان خر یه روزی یه جایی یه وقتی باید این تخات تموم بشه. شب خیر. چی چیکار داری میکنی با این کمر دلا شدی. بلندش رو برو دیگه تمومش کن دیگه؟ باشه باشه پاشو پاشو مادر من پاشو میگم پاشو تفرقه نویشته تفرقه تفرقه و اینه پدر و پسر فهمی حرف حرف به تمرگیجا به حرف من گوش کن توجه کن دهیزی تعلیل کن آنی جاد آها آه. خب Átf? Rasul? Átf? Selam gözüş. Çüyüyorum can. Tekrar inamışım. Daha lanet şimdi başlasın. Çibeyim مهتاب میگم از مهتاب خیلی کم گفتم اراد راستش همیشه از مهتاب کم گفتم حتی باسه خودم چون میترسم میترسم چشم شور باشه میترسم چشم بخوره مهتاب یه دونست همیشه میگم مادر رو ببین دختر رو بگیر مزخرف میگم محتب نشبیه مادرشه نشبیه خوهرش نشبیه باباش نشبیه هیچ کسی دیگه که من میشنزم من عاشقشم ولی این راز چندین ساله که شب و روز مشتری خواب و بیدارمه. گای با میشه زبونم دکنت بگیره زبونم به بچرخه امشب چرخید به چونش قسم خوردم بگرد کردم ولی قسم خوردم ولی این افشاگری تو این نیست زبون بگیر این افشاگری تو باید شد بعد سال ها جوری نگام کنه که با نگاش یادم بیفته کی بودم و چی هستم همیشه که جمعتا بیه لقبا بودم چه وقتی که پول نداشتم چه الان که دارم هیچوقت ازم نامید نشد حتی وقتی فهمید بچان نمیشه حجم نکن عیب از منه اون اونی که گردن گرفت مهدابه اونی که گردن کلافت مهدابه اونی که خیل شده منم چار این بوستان و نیستن ولی مهداب سرم میاد بگم ولی جلدشم جلدش شدم وقتی با نگاشته مالی کرد هر چقدر پول داشته باشم و هر ماشینی باشم و هر چقدر حجر و آپارتمان داشته باشم بازم برش یه لقبام نیتم کردی جلوزنم بده کارم کردی پیشش بده کارتم دورت میکردم خدا دو نکنه ولی آب رفته مگه به چوب برمیکرده تو بگوان چی کار کنم de nem tudom, hogy hány tasszamjona. Hárt, hogy csúszott a tasszamjona. تو چیکار کردی با فقط خانواده کریم میدونم قولو قسم بسطه که راز بمونه اونو خود میتونم من محطاب رو میگم پیش محطاب خیلکم کردی تو بگوه چی کنم؟ کفشو شما چی کنم حله؟ نه از ترس پشه از سر دل شما جون شما حرف بابا اون وسط بابا اون دنیا داره عذاب میکشه شما میدونی اون دنیا هست منم به جون شما خانده داشت جونشو دارم بعد بزن ciyor <gülüyor> otomatik kone hiç zaman varğa patardı o sonra makinaları hiç şey yapışan olmaz böyle hiç zaman varğa karar vermiyor bas bunu mi koğum ohoram be دانم می آ با تو آرا بی تنها همها می زخمی Hát سن افکرون تا با کل سلام آن بای بورش رو همی با وقته کول کردن کریم و چرخوندنش تو میدونه یا فیمن شبیه آدم هایه که آب از سرشون گذاشته مجونه داری بشینه تماشا بکنم نیدی چی حالام خراب میکنه. اینه که بچه آبشمه بچه ترد که داغی یه رکاد نماز رو نخونده رو به دلشتون گذاشته رفت این حالم خراب میکنه. Hello. Salam. Salam. Hoşum. Hoşça به سلام کن سلام علیکه سلام زدم تو گوش ستار گفتم چک وعدی مالش ها باشه من دارد خدمتا ده نیستی این گوش مال شما بزن خواهد تا ببینی در خدمتیم تو هنوزم که هنوزه برای کریموستان یتیم بدری بابا مالشو مزدشو همه زندگیشو بالا کشیدی اما وقتی میخواد ازت از شکایت کنی دست دلش میلرزید میگفت من برم از یتیم بدری شکایت کنم خب مالشو بالا کشیدی؟ آخ گفت منم گفتم اما آخ نکشید. ولی وقتی دیشب چه که تو دیدم دستا تا فهمیدم میخوایی بین پدر بسنیشون رو هم بزنیم آه کشیدم اما نفرینت بکردم حالا نمیدونم نفرینت کنم یا بزنی تو گوشم آره هم یادت میمونه همین که نفری پشت نیست نه برو آرفت چشم گوش بده ببین چی میگم اگه بخوای بین این پدر و پسر رو هم بزنی و به هم بریزی و بازو خراب کنی از این خراب‌تر که هست اون وقت با اولفت طرفی ملتت دیماج بگی اون دست تو بگیر میگم داداش من میرسمی خونه آره بشیم مرموی باشم نه حسابی به جا میارم نه کتابی به کردی میتونی پیران من تو میدون بزنی سر چوب به چرخونی. بعد بگی بردم بردم برن که نه شاهدی هست و مدرکی و پدرکی قصده نمیشی از بس عدای آدم خوبه رو در میاری کریم بوستان آره دیگه آدم خوبه ای خاله بزنه تو گوش من تغییر روش دادم داشت به خاطر یه دختر اختری یه زن جنوم علم کردید دانا ساکت بودم سلام در نایم اده من هم نزش بوده ولی از این به من میخوام قروره بشم سبونه بکشم یه شبا به حساب کردم این چک از ذر من پاس شده است سر کیسه سفت شده خو کریم بستان از نظر مردم شما همون مرد خوره چهار تا بچه یتیم حاج بدریم گفتم الفت مره نه اینکه قبولش داشته تردشته باشن مرد بودن مذیعتی نیست که بگم الفت به ست تا مرد میارزه الفت خودش یه لشکره نذاشتم به تو گوشت چون در شهن یه خانوم نیست با آدمی مثل تو عربه ده تیشه بگیره تو چیه چلی من؟ خود راست بر منو کردی باید تون ب من میخوام همه رو بدونن چ اوستان تو اونجا اینجا خودشز من از روش رد میشم شوم وسییت هاونه بخون ماشینت موتورت لیلات میخوام هم غت بگیرم پس ت که از ت رو خودم از خودم میگیرم نمیدونم این همه ساد های خودم باید صدم یاراست عشق برمیگرده تنها <تصفيق> میمانه